فصل پنجم نظریات مرجع پای در فصل حاضر به این پرسش می پردازیم که متناظر با سطوه چارگانه تحلیل کدام نظریه های مرجع می تواند در توضیح خلقیات و روحیات مردم به ما کمک کند. در این فصل، چند نظریه مرجع مرور می شود که هر کدام به گمان نویسنده، ظرفیت مفهومی و تئوریک برای تحلیل یک یا چند سطح از سطوح چارگانه تحلیل را دارد. یک، رهیافت گرایی تاریخی به طور عمده ناظر به سطوح نهادها، رویدادها و محیط است، دو بازی بازیها بیشتر با سطوح عاملان انسانی و تا حدودی هم با نهادها متناظر است یک رهیافت نونهادگرایی و مثالهای کاربردی آن در خلقیات وابستگی به مسیر و سرمشق سازگاری بر مبنای این رهیافت وضعیت موجود یک جامعه و فرهنگ گرانبار از گذشته و باردار آینده است مهمترین کلیدواژه این رهیافت وابستگی به مسیر است و در آن فرض بر این است که باورهای مردم، روحیات و خلقیات آنها در سرگذشت نهادهای یک جامعه و رویدادها و وقایه آن ریشه دارد. البته، مفهوم وابستگی به مسیر لزوما به معنای بیتوجهی به تحول نیست، زیرا خود تحولات نیز ریشه های نهادی دارد. در بره های حساس و بحرانی تحولاتی روی می‌دهد اما این تغییرات را نیز از طریق تکوین تاریخی نهادها و تحول آنها می شود توضیح داد در این حال نظریه وابستگی به مسیر تنها نظریه توضیح پدیدارهای فرهنگی نیست در توضیح آنها حداقل دو سرمشق یا پارادایم عمده از هم متمایز می شود سازگاری و بیانگری در پارادایم سازگاری مردم از طریق فرهنگ در تکاپوی سازگاری هستند به این معنا که میخواند با فرهنگی که دارند خود را با هستارهای زیستی و محیطی سازگار کنند از این منظر فرهنگ خاص مانند فرهنگ درو گفتن یا راست گفتن در واقع ساز سازوکار و مکانیزمی برای سازگاری انسان با ذهن بدن و محیط خود است فرهنگ مسئولیت پذیری یا مسئولیت ناپذیری از طریق ساز و سازوکارهای سازگاری با هستی زیستی و به ویژه هستی محیطی آدمی شکل میگیرد. اما پارادایم بیانگری معتقد است فرهنگ لزوماً از نوع کارکردهای سازگاری نیست بلکه در برگیرنده نمادهای معنایی است که از طریق آن مردم تجربیات متنوع زیسته خود را ایان و بیان می کنند. وابستگی به مسیر بیشتر در سرمشق سازگاری صدق می کند و برعکس در سرمشق بیانگری چه بسا پدیدارهای فرهنگی و امور و رفتارهای انسانی که اساساً ربطی به گذشته ندارند و از های بدی انسانی سرچشمه می‌گیرند. نونه‌هادگرایی پس از دهه 80 میلادی به مسابقه یک رهیافت توسعه یافت. دیمگیو و پاول با بصیرت های تازه ای در سنت نظری مارکس وبر پایه های اولیه این رهیافت را فراهم آوردند. در واقع، پایه و مبناه این رحیاف در سنت علمی برجایی مانده از مارکس و وبر است. به نظر میرسد میتوان همه نوع ها را به این صورت توضیح داد که بصیرت های تازه و انتقادی در متن سنتند و به همین دلیل افقهای تازه ای می و تجربه های نوعی فراهم می کنند تجربه نونهادگرایی هم به نوعی در سنت نظریه کار مارکس و مارکس وبر ریشه دارد که می توان از آن به عنوان سنت مارکس وبر یاد کرد یکی از اکتشاف های مهم مارکس این بود که به اهمیت مناسبات تولید پی برد او در مقابل این انتظار ایدالیستی که مردم آنچنان که می زندگی می کنند یک دیدگاه ماتریالیستی ارائه کرد که بر اساس آن مردم اغلب آنچنان که زندگی می کنند می اندیشند هر چند نظریه پردازان بزرگ دیگر و قبل از همه مارکس وبر ملاحظاتی جدی درباره الگوی زیربنا و روبنای مارکس عنوان کردند آمیزه‌ای از سنت نظریه مارکس وبر بستر خوبی برای برنامه‌های پژوهشی و نظریه پردازی‌های بعدی شد در الگوی کلاسیک مارکس هنر مذهب سیاست قانون و فرهنگ به منزله روبنا بررسی می شود. بحث روابط تولید و نیروهای تولید در این نظریه بسیار مهم است و آگاهی، ایدئولوژی، فرهنگ و روحیات بر اساس آن شکل می گیرد. اما ماکس وبر الگوی دیگری پیش نهاد. او به گروه های منزلتی، احزاب و طبقات اجتماعی توجه کرد.